کریم. نی حریف هر که از یاری برید پردههایش پردههای پرده های ما درید زهری و تریاقی که دید ای دمساز و مشتاقی که دید نهی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق, قصه های عشق مجنون می <تصفيق> محرم این هوش جز بی هوش نیست مرزبان را مشتری چون گوش نیست جلسه گذشته خدمت سروران و دوستان مباحثی در رابطه با دیباچه و مقدمه مسنوی که خوب مشهور هست به نینامه گفته شد. قبلن هم خدمت دوستان گفتیم که در این مباحس مولانا تلاش میکنه که اون چیزی که از عشق و لوازم عشق هست شور و اشتیاقی که در عشق هست ملانا اینها رو بیان بکنه بعد وارد بالاخره مسنوی خودش و با در قالب داستانها و حکایتی یک سری مفاهیم رو برای ما و شما تفهیم بکنه نه حریف هر که از یاری برید پردههایش هایش پرده های ما دارید مرانو میگه کسی که به درد محجوری و درد فراق محبوب مبتلا شده باشه تعم تلخ فراق به دوری رو چشیده باشه او میتونه با این کلام انسان کامل هم باشه رفیق باشه با این سنخیت داشته باشه مجانست داشته باشه بفهمه که این کلام یعنی چی؟ و حقیقت درد و قم او رو این شخص میتونه درک بکنه حالا مولانا در رابطه با خودش میگه از حقیقت حال صحبت انسان کامل از من بپرسید حقیقت حال این نهی که همون انسان کامل هست از من بپرسید که خودم به درد فراق و جدایی گرفتار هستم اثر ناله های زار این انسان کامل نفیر او و این ناله های او در من اینه که پرده های غفلت رو و پرده های سستی رو که در میان من و خدای من حائل و پرده هست اینها رو دور میکنه و من رو سرگرم طلب میکنه با یک تلاش مضاعف و دوچندی من رو به میدان میاره که بیش از پیش تو این میدان تلاش بکنم نهی حریف هر که از یاری بورید. هر که که قطع و فراق و هجران یک یار رو تجربه کرده باشه یک سرخیت و مجانستی با این داشته باشه در حقیقت او میتونه از ناله های نی استفاده بکنه و پرده اینجا پرده در اسطلاح موسیقی دانه ها به اون فاصله های منظمی که فاصله منظم سیمی که روی دسته ساز هست به اونها اسطلاحا میگن پرده ولی اینجا مراد همون ناله های نی هست که این ناله ها و این نفیر آشقانه نی پرده های ما دارید پرده های غفلت ما رو پرده های سست حمتی رو از ما برداشت و ما رو تو میدان محبت و معرفت خدا آماده تر کرد با احتلاش بیشتری ما به این میدان آمدیم همچنه زحری و تریاقی که یک دوگانگی و یک چیزی که در داخل این سخنان انسان کامل وجود داره مولانا اینجا میخواد بیان بکنه که از یک جهت اینها مثل از یک جهت زحرن و از یک جهت پاد زهره. همچنه زهری و تریاقی که از یک جهت زحره و تلخه و از یک جهت تریاقه تریاق قموماً چند تا داروهای مختلف رو با همدیگر قاطی میکردن در گذشته های دور و مریضی های سعبال علاج رو و سمزودایی وقتی میخواستن از یک شخصی که مارگزیده هست یا به نوعی سم میداخل بدنش رفته از این استفاده میکردن یا پادزهرم بهش میگن تریاق بلانا میگه این صحبت انسان کامل دو تا چیز توش هست هم زهر من وجه و هم تریاق پاد زهره هر دو تا توش هست همچنی دم ساز و مشتاقی که دید حالا مراد از این زهر و تریاق چیه ببینید انسان وقتی که جلوتر البته مولانا این مبحث رو گفت که ناله نی بلاخره اثری داره پرده های قفلت رو و پرده‌های سست همتی رو از ماوین ما و محبوب ما برمی‌داره بیت جلویی و یک گرمی و هیجان مطلوبی رو در مخاطب ایجاد می‌کنه خب مسلماً انسان برای نجات از این قفلت‌ها احتیاج به کم کردن و کنترل شهوات خودش داره و این کنترل شهوات اسباب رنجش نفسه برای نفس مثل زهر تلخ اصلا نفس آماده بس این کار رو بکنه کدوم نفسه که از ترک خواهشات نفسانی یا تقلیل خواهشات نفسانی لذت ببره مسلما برای نفس ما این چیز خیلی جانکاه تلخ و زهر جلوه میکنه برای نفس ما اما در مقابل باعث میشه که یک خوشی و یک فرحت قیر قابل وصفی رو برای روح داشته باشه هر چی از این طرف شما شهوات رو تقلیل بکنی نفسانیت رو در وجود خودت کم بکنی با مجاهده هایی که مثل زهر تلخه از اون طرف روحانیت در وجود شما تقویت میشه در نفسک و تعال. سر وقتی که نفس خودش رو ترک میکنه خیلی راحت تونه به این وادی داخل بشه حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیست وقتی که ما با خواهشات خودمون و با های حرام خودمون و با, با این تعلقات دنیاوی که زنجیر دست و پامون شده اینها رو گسستیم و آمدیم جلو دیگه چیزی نیست گایی ما خودمون با شهوات و خواستهای خودمون ما بین خودمون و خدای خودمون پرده و حجابی. اما این یک چیز قطعی و مسلمه که کسی که میخواد خواهشات رو ترک بکنه، صحبت یک انسان کامل رو گوش میکنه. همچون ای یا طریاقی که دید این این مجاهده میطلبه. این این رو از تو میخواد که قفلت‌ها رو از خود دور بکنی. خب به در های قفلت رو که میخواد از خود دور بکنی باید مجاهده بکنی. باید قربانی بدید. باید تلاش بکنی اینا لازمه این راهه این تلاش این مجاهده مثل زهر برای نفس تلخه اصلا نفس آماده این کارا نیست اما از یک جهت دیگه مثال بزنم من ببینید نفس ما مثل یک تفله اگر جلوی نفس رو نگیری تفلی که از مادر شیر میخوره با مجاهده باید جدا بشه با یک سری سختی ها باید جدا بشه اگر این رو عادت بدی به این شیر و بخوای بدون یک <تصفيق> سری مجاهده ها و یک سری قربانی این رو از این پستان جدا بکنی حالا حالا این جدا نمیشه بردار نیست اگر بخوای یک ترحم نابجا و یک نوع حمایت نابجا از این بچه بکنی و اینو بگی ولش کن آزاد بذار ببین چطور زجه میزنه چطور گریه میکنه برای این شیر مادر بذار بخوره تجربه ثابت کرده که بعد از دو سال تا بیشتر سه سال بیشتر و بیشتر حتی بچه ها این شیر خوردن. این بچه اینو نمیفهمه که جناب اگر تو از این پستان بگذری و از این شیر بگذری پشت سر برای تو انواع تعم هاست برای تو انواع سفره های رنگارنگ در انتظارت از این بگذ اونا در انتظار ب این نمیفهمه. اصلا منطق بچه اینو قبول نمیکنه. و اگر میخوای بچه تو جدا کنی از مادر رو بپرسید که چقدر سخته؟ تا بچه‌ی خودشون رو از این شیر جدا میکنن اما به منزی که از شیر جدا شد حالا و این های مختلف رنگ‌های مختلف رو تجربه کرد های مختلف رو تجربه کرد حالا دو مرتبه بهش بگو جناب اینا رو نخور بعد مدتی که اون رو ترک کرد و به این ها عادت کرد حالا بگو اون‌ها رو نخور دو مرتبه چی بخور همون شیر مادر حاضر این کارو بکنه هرگز حاضر نیست ببینید نفس امام صاحب همون طفله بخوای با فلسفه و منطق و استدلال اون رو قانع بکنی که دریای محبت خدا اینه این نفس اینا رو نمی فهمه. نفس رو باید با مجاهده جدا بکنی از این خواهشات وقتی از اینا جدا شد اون موقع به منزل مقصود تا از اینام جدا نشه تو نمیتونی تا نمیتونی اون لذت روح رو بچشی ببینید وقتی میای پای صحبت یک دوست خدا میشینی این ناله این صحبت دوست و خدا در تو چی ایجاد میکنه؟ یک طلبی رو ایجاد میکنه خیلی مثلا میگم مثال میزنم مشتی نمونه خروار در تو یک شور اشتیاق پیدا شد ان النور صحم من سهام ابلیس مسموم نگاه به طرف نامحرم حرم چری زهراگین از تیرهای شیطان عجب منی که میخوام خدا را حاصل بکنم قرب خدا را حاصل بکنم با این چشمم لقاء خدا را ببینم این چشمم رو در خلوتها برای اشباری با خدا و گرم کردن بازار عشق داشته باشم این چشم رو باید به نامهرم ببندم سخته تمام زمینه های گناه فراهم شده تمام نفسم هی میگه نفسم میگه هی تلک هی تلک هی تلک تو هم باید یوسفوار وار کنی؟ ففر رو الله. ففرو عما صب الله الى الله کسی نمیگه چشم بستن به نامحرم حرم سخت نیست کسی نمیگه چشم بستن به نامحرم حرم مثل زهر تلخ نیست هست اما چی میشه بعدش من ترکها مخافتی ایمان و یه جدا حلاوته فی قلبه اما اگر این زهر رو نوشیدی به خاطر خدا این حلاکت نمیکنه این زهر پاد توش داره چیه حلاوت ایمان تو اعماق قلبت چشمی که بر نامحرم بسته شده عشقی داره گریهی داره و این لذت قرب و حضوری داره حلاوتی با خدا داره که چی؟ غیر قابل بسته کلمات و جملات از بیان حقیقت این قاصره نمیتونه حقیقت این رو بیان بکنه. برای همین این صحبت انسان کامل دور بود متفاوت برای شما داره از یک طرف نفس شما رو میگیره چیکار میکنه؟ پامالش میکنه. نفس شما رو یک سری زهرها و یک سری تلخ کامیها رو میاره برای نفس شما برمقام میاره. از اون طرف دیگه چی کار میکنه؟ روح شما رو متعالی و بلند میکنه. به جایی میرسی که رشک ملائکه میشی و ملائکه از مقام تو بخت زده میشن. این چیه؟ این درجهش چیه؟ این جایگاهش چیه؟ همچون ای دمساز و مشتاقی که دید مثل نی خب ببینید وقتی این پادزهر آمد انسان زهر تمام ناکامی ها رو حاضر تحمل بکنه تو این پادزهر عجیب پادزهریه از کجا داره میاد از چه ذات این داره میاد این دیگه غیر قابل وصفه انسان خیلی راحت نه تنها وقتی این پادزهر رو میچشه تعمش رو حس می‌کنه تعمش رو نه تنها از این میدان فرار نمیکنه بلکه چی گویا یک رفیق موافق و هم نفس گیرش آمده و با طلب مضاعفی با طلب دوچندی به این میدان میاد اصلا تمام اون زهر رو و اون تلخی که برای نفسش بود همه رو فراموش میکنه این بیشتر شتاب بیشتری تو این میدان میاره این قرب و وسال رو مولانا گفت دمسازی این قرب و وسالی که بعد از این تریاغ یا بعد از این پادزهر نصیب میشه این رو مولانو گفت دمسازی و این ازدیاد طلب رو طلب مضاعف رو مولانو بشکف چی؟ مشتاقی حالا بیت برامون آسان شد همچنه زهری یا تریاقی که دید همچنه دمساز و مشتاقی که دید ما یک طرف قضیه رو می‌بینیم که این دوست خدا این اهل الله چطور داره از یک سری لذت‌ها و از یک سری حوزه نفس داره می‌گذره این بخش قضیه که تلخ ما داره می‌بینیم اما یک بخش قضیه که با خدا چه پادزهری این داره و چه قربی با خدا داره اینو ما نمی‌بینیم بر همینه که گاهی اوقات ما به زندگی دوستان خدا گاهی اوقات حسرت می‌خوریم اینا خیلی سخت زندگی براشون نه اگر سخمی بود اینا هر روز اشتیاقشون بیشتر نمیشد، شد و مشتاقی اینها بیشتر نمیشد، طلب مضاف برای اینا ایجاد نمیشد. تو بدون که در حین این اینها دارن ببینید ذات خدا و کان الله و شاکرن علیمه علیه قدردانه وقتی قدم‌های یک سک رو که به طرف یک غار بر می داره به همراه دوستان او این رو الله نادیده نمی گیره و این رو الله سبحان و تعالی تو کلام خودش یاد می کنه اون ای که داره تلخ کامی ها رو و زهر ها رو و یک سری لذت های حرام رو از نفس خودش به خاطر خدا ترک می کنه فکر می خدا در قبال بهش چیزی نمی ده چیزی آیده این انسان نمیشه قطعا الله سبحان و بطاله چیزهایی به این نشون میده که این از مملکت حف اقلیم دنیا چی میشه مستقلی میشه می حدیث راه پرخون میکند خوب گوش کن آمدی سراخ مصنوی من اگر میخوای حکایت مصنوی منو گوش بکنی و اگر میخوای ناله ها و نفیرهای های انسان کامل رو گوش بکنی این برای تو حدیث راه پرخون میکند قصه ها و برای تو داستانه از اشاق مجنون اینجا مراد همون مجنون مشهور که بالاخره شهره آفاق شد قیصی که از شدت فرط محبت لیلی به اینجا رسید که بالاخره عقلش هم فکر میکردن مردم از رفته ازش مراد اون نیست مراد اشاق هستن داستانه از اشاق پاک باز و مجنون صفت میخواد برات بیان بکنه مرد میدانی بسم الله این حدیث این حدیث عشق داره بیان میکنه از یک سری مجنون صفات ها میخواد برای تو چیزهایی بگه از اون کسایی که عقبه محبت خدا رو فلقت عمل عقبه این عقبه رو با اقتهام رد کردن اقتهام میدونی یعنی چی اقتهام یعنی در لغت به یک دفعی زدن دیوانوار زدن بدون درنگ زدن همین که به الله اون طرف این گردن گیر میاد خودشو بزنه به این گردنه همین که به خدا تو آتش نمرود گیر میاد خودشو بزنه به این آتش همین که بدون الله سبحانه و تعالی با چاقو به حلقوم عزیزترین فرد من تو دنیا و تک فرزند من تو دنیا گیر میاد چاقو به حلقومش بکشه و, و پروا نکنه همین که به خدا زیر تیغ و تبرها میاد مستانه نره بزنه فصا رب و بزنه خودشو به این آواتش این از این مجنون صفتا حکایت میکنه اگر انسان اینو داره میتونه تو این میدان بیاد اگر نه نه اما داستان من یک نکته اینجا فراموش نکنید اگر این عشق رو با عشق های دنیا ما نیاییم مقیاس قیاس نکنیم خیلی اینا متفاوته می ای حدیث راه پرخون خون میکند اما این خون با خونای دیگه فرق میکنه ببینید الله سبحانه و تعالی گویقو چاقور به حلقوم اون شخص میبره میده دستت کشتگانت خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است تو خودت تسلیم دی خدا بکن خدا جان تو نمیگیره صد تا جان به تو میده که این جان تو رشک تمام جانهای عالم میشه قانون خدا همینه لینال الله لحوم وحاولات دماها ولکی ینال التقوا منکو خدا میخواد این تو قلبت رو ببینه چقدر برای او اقتحام داری چقدر برای او حاضری از اعماق وجودت مایه بگذاری چقدر برای او مجنون صفتی چقدر دیوانه اویی همینو میخواد خدا ببینه وگرنه نه از عشق تو از آه تو از مجاهده تو از قربانی تو به خدا چی میخواد برسه آیا از این به حکومت و اقتدار خدا چیزی میخواد اضافه بشه؟ برای همین دوستان خدا این حدیث که شنیدن می حدیث راه پرخون میکند اواغه چی میگن شیخ محترم مولانا حکیم محمد اختر با وجود اینکه زبانشون اردو هست اما در یک مسنوی دارن به نام مسنوی اختر اشعار فارسی دارن انسان حزم میکنه اینها رو میفهمه عشق زبان نمیفهمه وقتی انسان عاشق شد الله سبحانه و به او یک گشایش ذهنی و یک شرح صدری الله سبحان و تعالی امیده که همه فرزانه های دنیا متحیر میشه یک کتشیر زیبایی دارن اگر مجنون حدیث ما بخندی ببینید حدیث خوانده این حدیثی که اینجا مولانا میگه نه حدیث راه پرخون میکند قصه های عشق مجنون میکند حالا یک انسانی که این حدیث رو شنیده و به این حدیث رسیده حالا چی میگه؟ داره تحدي میکنه به مبارزه میطلبه کیو؟ مجنون رو تو هم ادعای جنون میکردی بیا ما رو هم ببین تو این میدان تو چه کردی ما چه کردیم اگر تو فدا یک لیلی شدی که او رو دیدی ما فدا یک محبوب شدیم که هنوز ندیدیمش با ندیدنش این کارا رو داریم براش میکنیم وای به اون روزی که ببینیمش ای تیر قمت را دل اشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو قائب زم بله تیر محبت خدا رو اینها قلبشون رو سپر کردن در مقابل این تیر صداشون هم در رای آمد. ای بلبل شورید اشق زی پروانه بیاموز کان سوخته را جن شد و آواز نیامد بلبل نفیر و نالش زیاده اما پروانه پروانه پروانه یعنی چی؟ یعنی پروانه صدا هم نداره حسنی داره که این حسن رو میریزه به پای شم پروانه نه جانی داره که میریزه به پای شم پروه نه پری داره که میسوزه به پای شم پروه نه میگرده به گرد شم هرکی بهش نگاه میکنه با چشش می یکی تم خورش میکنه یکی تنه بهش میزنه چرا میگرده این وار و وار. پروا؟ نه این دیگه پروه نشده لایخافونه لومت لائمه هرکی هرچی دوست داره بگه ساری جهان خلاص خو پرва نچایه مد نظر مرزیه جانانه چاییه برای ما مرزیه جانانه مهمه. اینکه دیگران به چه دیدی به ما نگاه میکنن، اینکه دیگران چه لقبی به ما میدن، اینکه دیگران ما را تضمیت و تهدید میکنن، اینکه دیگران بالاخر ما رو میپسندن یا نمیپسندن، اینو برای ما مهم نیست ما امید میکنم راضی کنیم. مد نظر مرزیه جانانه نچایه. مطمئن باشیک مرزیه جانانه هستی. ما اونو میخوایم. کی به ما چی میگه؟ کی به ما چه لقبی میده؟ این اصلا برای مهم نیست این عشق پروانه است با سکوتش فریاد میزنه با عملکردش داره الگوی عملی و یک نماد و استوره از عشق رو به همه معرفی میکنه پروانه رو شما رو همه ما میشنسیم اما شیخ ما چه تعبیر زیبایی داشت حضرت ملنا اکیب اختر میگم پروانه رو میگم پروانه چون پروانه چی؟ پروانه یک چی رو نداره دیوانوار مجنون صفت میگرده شیدای یک شمع شده انتخاب کرده من اینو میخوام من شیدای این شمع شدم من دلداده این شمع شدم حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه اینجا شیخ ما چقدر زیبا میگه اگر مجنون حدیث ما بخوندی کاش مجنون می بود حدیث عشق ما بهش اگر مجنون حدیث ما بخوندی دو دست از عشق لیلی بر به خدا از لیلی خودش ننگ میآمد بنا جای دیگه حضرت شعری دارن میگن مرده شد لیلا و هم مجنون او خاک شد خاکی به خاکی وای او من شدم زنده زرب به ظلمنان می دهد صد جان مرا مولای من مجنون بیچاره خاکی بودی فدای خاک شدی لاشی بودی فدای لاشه شدی احمد یون نه دنبال کی بگردی به جای اینکه دنبال نقاش ازل بگردی سرچشمه حیات رو پیدا بکنی و اون ذاتی که برای یک نطفه گندیده صورتگری میکنه، حسنی رو ایجاد میکنه که تو دیوانه او شدی به جای نقاش ازل تو به یک صورت راضی شدی تو از یک دریا به یک قطره راضی شدی تو دیوانه یک قطره شدی کاش دریا می دیدی کاش نقاش ازل رو می دیدی و کاش حسن او رو تجربه می کردی چه باشد آن نگار خود که بندد این نگارها بیشه تو عاشق این نگار شدی عاشق اون نگار ساز نشدی تعم قرب او رو نچشیدی هم کلامی ای دیمانت کرد هم کلامی او رو تجربه نکردی کاش می و حدیث هم کلامی او رو برات می حسن این رو تجربه کردی کاش میامدی تا من حسن مولای خودم و به خودم رو برای تو بیان می کردم حالا این می حدیث راه پرخون می کند و کسی این حدیث رو نه تنها در قالب کلمات شما جملات ببینید یکی از عرفان نظری عرفانی در حد قیل و قال ارفانی که فقط محصوره و محدوده به یک سری کلمات و جملات آقا چند تا اصطلاحات عرفانی یاد گرفته مثل من امثال من عرفانی که فقط در حد قیل و قاله حال نیست این حدیث عشق نیست این در حد تعریف پردازیه این رو میگنه ارفان نظری عرفان شهودی و وجدانی نیست حقیقتی نیست گله خوریم گویا قد ما یک سری صحبت ها رو میگیم بعد میبینیم صحبتمون هیجان در مخاطب ایجاد کرد بعد به جای این که بگیم این کلماتی که از اون بزرگ بود مخاطب اون رو عوض کرد میگیم چی؟ بگید من عوض کردم جناب تو در حقیقت دوست صحبت های بزرگان بودی اگر تغییری هم تو این مخاطبت ایجاد شده او از اوه از تو نید از اون صحبته از اصله این نقالی تو نیست یک زمانی در زمان ابو علی سینا شیخ علی سینا، یک شخص عارفی حالا اسمش از ذهنم رفته این بزرگ گفت که ابو علی سینا اخلاق ندارد علم اخلاق علم تحذیب تسکیه خبر به ابو علی رسید ابو علی سینا شیخ کتابی نوشت در فن اخلاق و تمام مراحل اخلاقی رو یکی یکی بیان کرد و این چیزایی که لازمه تسکیه و علوم انسانیه همه رو توش نوشت اینا رو تویب کرد با بندی خیلی زیبا و قشنگی کرد فرستاد برای اون طرف اون عارفی که میگفت کتاب که به دست اون رسید گفتم بیا شما که میگفتی که ابوالیسینا اخلاق نداره یعنی از تسکیه محرومه دبا کن چه کتابی نوشه؟ گفت من نمیگم اخلاق نمی داند، میگم اخلاق نداند اخلاق ندارد یعنی ملکی وجودش نشده اصطلاحاتشو بلده حرفاشو بلده کلمات و جملاتشو بلده حاجم دادل مهاجر مکی رحمت به حضرت مالنام عمد قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی بانی دارلون دیوان گفتند شما اونجا میرید چیکار کنید پیش حاجم دادل مهاجر مکی شما تمام علوم رو یاد گرفتید که مثال ما مثل دارو فروشه میفروشه اما ماهیت دارو رو نمیفهمه ما رفتیم اونجا تا به اون حقیقت ها برسیم به اون نور علم برسیم به اون کیفیت علم برسیم به اون حدیث عشقی که تعوری خوندیم می به حقیقت اون حدیث عشق برسیم می خوام اونجا اینو یاد بگیریم بعد اون طرف مقابل ساکت شد گفت راست میگه واقعا می حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند تو این حرفای نی یک حرف نهفته است مجنون صفت این میدان باش این خون برای عشاق توش خانه اسمش خونه خونفشانی باید ابراهیم بکنه اما در حین خونفشانی خانه کرم اله رو تو آتش داره میبینه نه فکر نکنیم که خخدمتش مرسد این خون اسم خون که میاد اسم مجاهده که میاد بعد یک مرتبه ما بزده میش ما آقا خیلی خطر پس. نه جلو بریم این میدان با میدانهای دیگه فرق میکنه به پای همت رح بهدانجا بری و زن به بال محبت بری. چند قدم با توه. بعد او میبره او میکشه. از این گردنه هم او رد میکنه. فقط باانه دست تو است. یک مثال ساده بزنم ببینید گایقات بچمون. یک دسته ساک رو گرفته اصرار کرده بابا یک دستاشو به دست من ما که میدونیم این بچه و این ساک به هم نمیخوره که ببین خیلی خوب باباجون اجازه هست منم این کنارشو بگیرم بهت کمک بکنم بله بابا اونم شما بگی. حالا همه وزنه دست منه همه بار رو بازوی منه بچه مو دسته رو گرفته محکم داره راه میره که چی بگید من میبرم اما خبر نداره که اون دسته اون طرفی رو اگه بابا ول کنه چی خودت با کله میخوری زمین حالا خدا میکنه خدا میبره به اسم من میکنه خدا از این گردن رد میکنه تمام اون عشاقی که این گردن محبت خدا رو با اقتهام، دیوان وار مجنون صفت رد کردن خودشون از آن کردن که ما نرفتیم ما رو بردن اما همون چند قدم اول کراسونی نیست اصحاب کف چند قدم تا دهانه قار رفتن بعد خوابیدن. شکل شنگ نکرده. نکردن شنگ چی بود بگید همین قدم های اول بود همه چیز رو خودشون گذاشتن آقا تو این خفقان تو این تهدیدها، ها و تو این فشار ها و تو این تفتیش عقایدی که تو این مملکت اون زمان دقیانوس بود ما حاضریم جان بدیم خودشون به هم وسیعت میکردن موقعی که از خواب بیدار شدن این انقد خفقان که تک تکشون میکردن اگر میفهمیدن اینا مبهد شدن اینا ایمان به خدا آوردن با همینا اینا از اشراف بودن اینا از یک شهر متمدن بودن که خدا ازش تعبیر میکنه مدینه یعنی شهری متمدن از خانواده های مرفح بودن خانواده هایی که دروازه هر ناز و نعمت برشون بازه اما با همین وجود گفتن ما خدا رو میخوایم. ببینید وقتی ما قربانی میکنیم خون قربانی رو که ریختی بعد الله سبحانه و تعالی میگه گوشتت مال خودت پوستت مال خودت همه چیزش هم مال خودت میخوای هرچه صدقه بکنی آزاد هرچی میخوای خودت بخور من میخواستم چیز دیگر رو ببینم دیدم نیان علی الله له محاوله دماوها ولکی یاناله التقوا منكم ما چیز دیگه رو می‌خوام ببینم اون چیزی که تو سینه‌ت بود تقوایی که تو سینه‌ت میخواستم ببینم ببینم برای من حاضری از این بگذری یا نه خب حالا که گذشتی مال خودت بر من چیز دیگه ازت نمیخوام همین دوستان معامله‌ای که ما داریم با خدا میکنیم همینه این حدیث پرخون هست اما تو همین خون‌ها چیه خانه کرمه و تو حین مجاهدت ها به ظاهر الله یک سری یک آمد پیش یک بزرگی که واقعا شما مجاهدی واقعا شما انسان زاهدی. گوه چطور مگه که کلن از دنیا گذشتید گوه تو مجاهده بزرگی تو کار بزرگو کردی تو ریسک عذیبو کردی من چی فکر کردیم بزرگ داره تملق میکنه چابلوسی میکن که من چی کار کردن تو از خدا گذشتی من که کار بزرگی نکردم از یک لاش گذشتم از یک مردار دنیا گذشتم از یک جیفه گذشتم من از چیز بزرگی نکردم از متاه قلیل گذشتم من از اون چیزی گذشتم که خدا به نمرود داد من کار بزرگی نکردم مجاهد بزرگ توی گاهی ما به زندگی دوستان خدا به دید ترخم نگاه میکنیم. اما قابلیم که اونها تو هین مجاهدت ها، تو هین قربانی های خودشون همه شیدو دارم می یوسف رد به سجن احب با الی این زندان محبوب نیست چه احب تو همین خون داره خان می‌بینه تو همین حین مجاهدت داره همه چیز رو میبینه دوستان من شیخ نکته جالب میفرمود میگو به افقهای دوردست خیره بشو هر جا دیدی افقی سرخه به فهم خبری هست هر جا افقی چی شده؟ گلگون شده، سرخ شده بفهم چیه؟ از این افقی خبرایی هست قرار چی در بیاد؟ خورشیدی در بیاد هر دیدی دلی برای خدا داغ داغ و سرخه بفهم خورشید قربی از این دل در حال چیه؟ طلوعه مثل جای نگرانی نیست جای پریشانی نیست اگه میخوای نگران بشی برای اون نگران نباش برای کی نگران باش؟ برای خودت نگران باش که از این حدیث عشق محرومی نمیدونی یعنی چی نی حدیث می حدیث راه پرخون میکند قصه های عشق مجنون میکند محرم این هوش جز بیهوش نیست میخوام من یک چیزایی بهت بگم اما خب چه کار کنم که محرم این هوش این هوشی که الله سبحانه تعالی به انبیاء داده این هوشی که الله سبحانه تعالی به اولیاء داده این هوشی که باعث میشه تو از تمام رنگارنگی این کائنات یک ذات رو انتخاب بکنی محرم این هوش جز بیهوش نیست یعنی کی، یعنی کسی که خدا رو بخواد به هر قیمت بیهوش مراد کسیه که از این به قول معروف تنها عقلش عقل معاش نباشه عقل معادم داشته باشه و به تعبیر مولانا جایی میگه تنها عقلی و هوشی او خربین نداشته باشه فکر آخربین همچی دیگید داشته باشه ببینید الله سبحانه و تعالی به خیلی از کفاری که های دنیاوی داشتن های اقتصادی داشتن های اجتماعی داشتن خیلی شهره وقت خودشون بودن الله به اینا میگه و هم لا یشعرون و هم لا یعلمون خیلی از اینها بودن که با وجود این که فرزانه و زرنگ تو دنیاشون بودن تاریخ اسمشون رو از حکم به چی عوض کرد؟ جهل. این چه شعوری نداشت؟ این چه هوشی رو نداشت؟ بگید؟ هوش دنیا، هوش کسب و کار، هوش کاخ ساختن، هوش پست و مقام به دست آوردن این ها رو نداشت که حکم شد ابوجهل بگید؟ چه هوشی نداشت؟ این معاش معاد رو نداشت موقعی که عبوبک کنار رحمت و کل مالش و کل سربع یک ده با یک ولعی با یک شوقی با یک داشت داشتن دنیا رو کسب میکردن و دنیا رو به دست میاوردن اما عبوبک دنیا رو داشت میریخ به پای رحمت و لیلالمین همه میخندیده میشه یه در چی کار میکنی؟ چی میگنی؟ کجا داره میری؟ همینی که ما بهش میگیم و یک قولونه این ن ان ایوز بالله ما میگیم دیوانه ابوبکر داره کل مالش رو به پاش میریزه بیهوشه از چی بیهوشه از این عقل معاش از این عقلی که حجاب و پرده ما بین ما و خدای ما شده از این فرزانگی که تو دنیا چستی و چالاکی که باعث بشه ما هوش آخرت رو از دست بدیم این بده محرم این هوش من تو این هوش رو میخوای اما این هوش رو کسایی میتونن به دست بیارن که چی سنخیت داشته باشن با این هوش و اونا کسایی هستن که چی خودشون رو مجنون صفت کردن جنگ تبوک میشه رحمت اللعالمین که که مالشو دوست نداره انه لحب بالخیر لا شدید مال رو چی میگه خیر معرفی میکنه تو کلام خودش اینهو لحب الخیر لشدید شدیده این انسان نسبت به حب دنیا اما یک محبت اشد بد باشه که این شدید سر جاش بشنه اون شدید جای خود با مالت هرچی دوست داری محبت داشته باشه اما این شدید با نشه که از اون اشد فراموش کنی. اللهم سبحانه و تعالی میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال و اقترافتموها الى اخره اية احب من الله و رسوله اینا نباید احب بشن زین للناس حب الصحبات اصلا این جزء فطرتته محبت داشتن به اینها اینا برایت زینت داده شده چاره ای با اینا نداری با زن محبت داری با بچه محبت داری با دنیا محبت داری کاری بینا نداری اینا بدم نیستن به جای خودشون در حد خودشون. اینا وقتی بدن که چی بشن؟ احب بشن اینا وقتی بدن که اشد بشن اینا وقتی بدن که اینقدر هوش دنیاویت قالب بشه که تو هوش و شعور دینی تو کار بکنی؟ دست بدی قیمت دکانو میفهمه قیمت نمازو نمیفهمه قیمت تعلقای دنیاویشو میفهمه تو این بود خیلی زرنگه چست و چالاکه تعلقات دنیاویش نکنه دست بره تو مجلس عروسی من امه راضی برگرده خاله دای راضی برگرده دایی راضی برگرده عمو راضی برگرده قوم خویش و تائیفه راضی برگرده این هوشو داره چست و چالاکه خیلی زرنگه اما یک هوش نداره چی تو این مجلس عروسین کی راضی باشه الله راضی باشه اگر پایان جلسه بهش بگی فلان کردی الله ناراضی شد به عبروش میاد یک زره تکون میخوره این اقربه محبت الهی یک تکون میخوره بفهمی این زنده است حالا ناراضه یک تکون بخوره که تو بفهمی چی این آمپر ایمانش یک تکونی خورد اما صحابه کرام وقتی میفهمیدن الله ناراضه افو این هوش این شعور دینیشون باعث می شد که دنیا وضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم این هوش و شعار دینیشون باعث می شد که دنیا با همه یه وسط براشون تایم بشه الله ناراضه تکون می خوردن خودشونو به ستونهای مسجد النبی عن صالح ابو می بستن تا الله ما رو از ما اعلان رضایت نکنه ما از اینجا نمیریم. این شعور دینی باعث می شد که به خانه خدا پناهنده بشد به گناهی گرفتار استوانه ابو لبابه تو بسته و نبی دوستان شاید دیده باشند ندیدین؟ الله قسمت بکنه چیه این استوانه؟ یک بنده خدا اسیر و محبت خدا شد زنجیر محبت خدا به پا کرد شعور دینیش رو کشون به اینجا تا خدا از من راضی نشه از خودش نمیرم بیرون عشقی پایین ستون ریخته شد آهی از این ستون به سمت آسمان بلند شد این ستون متبرک شده به اون تکه خاکی که خدا نگاه رحمت بکنه تا قیامت میکنه آثار رحمتی الهی اونجا حس میشه و اون تکه خاکی که در اونجا خدا نگاه عقوبت خودش رو بکنه تا قیامت اونجا محل خشمه برای همین رحمت اللعالمین از محل عذاب قوم ها که رد میشدن چادر رو سرشون میداختن به صحابه میگفتن تون رد بشی محل عذاب اینجا هر امروز محدث ما مفسر ما آرزو میکنه درکت نماز روح قدمهای عبو لبابه بخونه چه اینجا یک نفر با شعور دینیش با وجدان بیدار دینیش فوری آمد پای این ستون تا خدا رو از خودم راضی نبینم نمیره خودش بس بحث اینجا بعد از یک مدتی رحمت الالعالمین موقع سحر به ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین خبر داد که برو به اسپاس پرده به صحابه بگو ابو لبابه عف شد اللہ او رو عف کرد اما اینم ابو لبابه رو قانع نکرد شعور دینی رو ببینید امروز اگر به من و شما هم بفهمیم الله امروز از ما ناراضه نبی از ما ناراضه یک تکان کچک میخوریم یہ کم وجدان ما بیدار میشه که اللہ ناراضه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هم عن الاخره هم غافلون از دنیاش خوب میفهمه، مدل ماشینا رو خوب میفهمه، هر چیزی رو به نرخ روز میخوره، طلا نرخش چقده، دلار نرخش چقده، نوسانات بازار چطوریه، همه اینا رو خبر داره، چست و چالاکه، اما ازش که میپرسی آقا جان، قیمت درکت نماز چنده؟ قیمت یک سجده چنده؟ قیمت یک اشک چنده؟ قیمت یک ربنا چنده؟ قیمت یک آیه قرآن خوندن چنده؟ قیمت یک باب دین رو یاد گرفتن چنده؟ قیمت خودت چنده؟ قیمت همه چیزو فهمیدی سیب زمینی پیازو به نرخ روز میخوری اما قیمت خودتو میفهمی؟ خودتو به چی فروختی؟ میدونی تو چنده؟ تویی که پدرتو مسجود که بوده خودتو به چند فروختی؟ تو چنده؟ خودتو به قیمت ثروت قارون بفروشی؟ فکردی خیلی فروختی؟ محرم این هوش جز بیهوش نیست پایده شب آقا خوشحاله چه گردی جناب؟ امروز این قد کاسبی کردن چند رکت نماز قضا کردی؟ اینو دیگه نمیفهمه اینو دیگه نمیفهمه قیمت نماز چنده اینو نمیفهمه اما صحابه قیمت نماز رو میفهمیدن ابو طله تو باق خودش داره نماز میخونه همه دارن جون میدن به باق برستن اینا دارن باق رو فدای هدفشون میکنن تو باق داره نماز میخونه یک مرتبه این پرنده تو شاخ و برگا گیر کرده تو های نماز صحبه میاد فوری میگه یا الله این باغ باعث شد که ما بین من و تو گفتگوی من و تو خلل بیاد غیرت اینو در اصطلاح عرفا میگن غیرت غیرت به جوش آمد این این باغ این باغ این باعث شد که ما بین گفتگوی من و تو خلل بیاد فوری کل باغ رو در راه خدا صدقه کرد ما برای رسیدن به این باغ چند رکعت نماز قضا میکنی بگی؟ اگه ما زمان صحابه کرام روزمان الله علیه مجمعین می‌بودیم، بهشون چی می‌گفتیم؟ زندگی ابو بکر رو می‌دیدیم، زندگی عمر رو می‌دیدیم، چی می‌گفتیم بهشون؟ اونا بیهوش بودن تو دنیا شون. یک تاجر رومی وقتی آمد تو مدینه منور موقع نماز دید اه اینجا شهر عروه؟ اینا شهر امبات؟ اینا کجان؟ اتفاقا اون روز مسئول بازار نجحوانی بازار سیدنا، امیر حمزه سید و بود. آماده گفت نه. اینا اگر می‌بینی بیهوشن، قیمت طلا براشون مهم نیست و قیمت دکان و قیمت سیبزیونی و پیاز براشون مهم نیست، همه رو ول کردن. اگر تو این بود بیهوشن، تو یک بود دیگه چی دارن؟ هوش دارن. برو تو مسجد النبی اینا رو با اشکاشون بشناس. با آهاشون بشناس، با سجده های طولانیشون بشناس، با ربناهاشون بشناس. هوششون اونجاست. امروز همین هوش تو جامعه ما هست؟ سوال. شیخ ما حضرت مولانا کی محمد اختر میگه یک زمانی پیر مردی آمد دیدم که هیچ چی روخانی قرآن بلد نیست یک سوره قرآن رو درست نمیخونه پیش گفتم 20 سال 30 سال از خودت از عمر گرفتی این قرآن کلام خدا است هنوز زمین رو درست نکردی نامه متنها عشق از دیدار خیزت با ساکین دولت از گفتار خیزت تو با گفتار خدا تو دنیا چکار کردی که یک روز دیدار خدا رو میخوای بعد قرآن بخونی از من سنی رفته عمری گذشته دیگه حال من نمیتونم اینقدر آلزایمر دارم فراموشی گرفتم حافظه کوتا مدتم خراب شده چنین چنان گفتم خیر خب برو رفت بعد از مدتی دیدم همین آقا رفته دانشگاه سبتنام کرده برای اینکه ارتقاء پست بگیره مقام بگیره بعد دیدمش گفتم تو آلزایمر نداشتی تو مشکل نداشتی؟ حافظه کوتا مدت فعال شد چی شد چست چو شوالق شدی زرنگ شدی تو که نمیتونی اینا رو حفظ کنی ببینید امروز ما رو تو دنیای خودمون چقدر هوش داریم اگر از فردا بگن آقا سوره حمد رو هر کس یاد بگیره یارانش دو برابر خوب سوره حمد رو با تجوید یاد بگیره یارانش دو برابر تا ماه آینده کل ما سوره حمد رو با تجوید بلد یا نیستیم بغرا رو یاد میگیریم میگن حالا حمد که جای خود ببینید دوسرون خودمون داریم سر خودمون کلا می‌گذاریم چرا محرم این هوش نیستیم چون بیهوش نیستیم چون از ابوبکر زندگی نمی‌کنیم همه به ابوبکر اون زمان گفتن دیوانه کنار خانه کعبه اینقدر کتک خورد همین کسی که جزء اشراف این قوم بود همون کسی که جزء سران این طائفه ها بود انقدر کنار خانه کعبه در دفاع از رحمت اللعالمین کتک خورد که روی ملافه ای کردن آوردنش خونه تا چشم باز کرد اولین کلمه‌ای که گفت چی بود نبی من چطوره رفیق من چطوره مادرش کفری شد که هنوزم ول نمی‌کنی تمام وجودت پر خون شده و درد شده اینا رو نمی‌بینه بیهوشه ضررهای دنیوی رو نمی‌بینه بیهوشه دردای خودش رو نمی‌بینه بیهوشه هدفش همیشه می‌بینه آخر رو میبینه منزل مقصود رو میبینه هوش واقعی رو این داره. ما همش میگیم چرا خدا ما از این هوش محرومیم؟ چون تو یک بُعد قضیه بود بیهوش باشه. بیهوش بودن به بی این معنا نیست دوستان من که دنیا رو ترک کنیم و بشینیم گوشه ها و عبادتگاهامون. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نه قماش و نقره و فرزند و زن. دین از ما نمی‌خواد ما دنیا رو کلاً ترک بکنیم و یک گوشه بشینیم و چیکار بکنیم؟ قفلت رو ترک کن. جایی که لازم شد کل دنیا تو وقتن تاجر خوبی باش اما مثل عثمان زرنگم باش چاهی رو خرید زمان قه سالی برای مسلمان ها وقف کرد به شرط جنت رو از زبان مصطفى شنید لشکر مسلمان ها رو تجهیز کرد در جنگ تبوک که صاحبه می ما انقدر عثمان ما رو تجهیز کرد که حتی احتیاج به کوچکترین وسیله نداشتیم همه چیز رو برامون محیا کرد به شرط جنت رو دو چند مرتبه مال عثمان صرف توسعه مسجد نبی شد تا قیامت چند رکت نماز اونجا خانده بشه چقدر خدمت دینی بشه مال عثمانه چرا چون تو توسعه مسجد نبی سهم داشته اسلام نمیگه تو تاجر نباش اما تاجری باش با اهداف عالی عثمان نه تاجری که فقط هر سال افت ماشین بده 10 میلیون 20 میلیون که میخوای خود خودتو به دیگران نشون بدی مثل قارون زندگی کنی یا علی تلنا مثل ما یا قارون صرف اصرافها، تبویرها، ویلخرجیها، مراسمهای که از روی چشم همچشمیه، تفاخرها آقا جرم شیطان چی بود؟ تکبر ابا و سک برا و کانمین الکافری ما داریم استکبار میکنیم با لباسمون با ماشینمون، با مجلسمون تفاخر میکنیم با جهیزیمون تکبر تمام عبادتشو به باد داد اسلام نمیگه خوب نپوش، برای خودت بپوش. اسلام نمیگه از وسیلی خوب استفاده نکن زینت حق توه تا جایی که اسلام جزو داده خود تو زینت بکن آرسته کن این الله جمیل و حب و جمال اما این زینتت و این آرائشت برای نمایش نباش برای خودت باش خودت از این لذت میبری استفاده کن الله دوسته را آثار نعمت خودشو در وجود تو ببینه اسلام منافاتی با اینا نداره اما برای تفاخور نباشه مجلس عروسی که با تفاخور اسلامی نیست اگر چش توش ساز و نقاره و رقص و رقاصی هم نیست چرا این همه مخارج سنگین رو داریم تحمیل میکنیم و چرا اینقدر داریم نکاح رو سنگین میکنیم و زنا رو تو جامعه داریم ترویج میدیم بعد اسم رو گذاشتیم چی؟ بید؟ دیندار چرا, چرا ما محرمین حوش نیستیم؟ تو اون بیهوشی که باید باشیم نیستیم میلان رقابتیه تو مدینه منوره اما نه تو ملس های اسراف فلانی دو هزار نفر دعوت کرده من سه هزار نفر دعوت کنم ولش کن چقدر ثروتمندا بودن فقیر شدن چقدر فقیر ها بودن به خاک زلت نشستن و سود و روا جنگ خدا و رسول کردن که چی؟ با مجلسشون فقف فروشی کنن با جیزی دخترشون فقف فروشی کنن به چه قیمت؟ من میخوام با خدا بجنگم تا ثابت کنم. از همه بزرگترم و برترم مگر فرعون چگار میگرد نفس تو کمتر از فرعون نیست فکر نگونی نفس تو از فرعون کمتره بعد میگیم خدای چرا ما محرم این هوش نیستیم این هوش فنائیت میخواد این هوش اینو میخواد وحله اول که تو خودتو فراموش کنی منو فراموش کنی خودخواهی ها و رعونت خودت رو فراموش بکنی تو که اینا رو فراموش نکردی و همش من من میزنی لباس من مجلس من باید در خور شهن من باشه در خانه من در شهن من باشه ماشین من در شهن من باشه شیطان چند دفعه من گفت؟ بگی یک بار من, من گفت و مترود و مردود شد ما روزی چند بار من میگی؟ آقای دیندار ما من من زیاد میگه تلاوت من عبادت من خدمت دینی من بیان من وصولی من گشت من دیگران رو به چشم حقارت نگاه میکنه علمان میگن تبلیغی که با تحقیر باشه حرامه ما روزی چند مرتبه من میگیم بعد میگیم چرا این هوش نصیب ما نمیشه هوشی که نصیب ابوبک شد ابوبک اولین کسی که فراموش کرد بعد از اسلام کی بود؟ خودش من بودن رو فراموش کرد. خودخواهی رو فراموش کرد. ولی ما محی زندگیمون منه. محرم این هوش جز بیهوش نیستمر زبان را مشتری چون گوش نیست. همونطور که محرم این هوش بد سنخیتی با این هوش داشته باشه. و بعد بیهوش باشه هر زمان که خدا و رسول خواست مال خواست کل مال. جان خواست کل جان در بس آمماده. الله سبحانه و تعالی فرزند خواست آماده چاقو به حلقومش میکشه الله سبحانه و تعالی آتش معاشره غلط رو جلو تو آورد مثل ابراهیم بگو حسبی الله و نعم الوکیل خودت تو بزن بی این آتش حس چیزای توش تو این خون خانه همه چیز توش میبینی محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را ببینی زبان من سنخیت با یک عضو داره حرف اینو فقط کی میفهمه؟ بگید فقط گوش یه اعضای دیگه هیچ کدوم نمیفهمن زبان چی میگه. فقط گوش این چی میگه. یعنی گوشه با مثل علامت سواله. همیشه منتظره که این چی میگه. و اینا دو تا زبان یکیه. یعنی دو برابر ما داریم گوش میکنیم بفرمایید. حرف تو بزن ما گوش میکنیم. دو برابری که حرف بزنیم چیکار میکنیم باید گوش کنیم. ولی چیه؟ الان معامله چطوره؟ برعکسه. دو برابر گوشمون حرف میزنی. نیست. مرزبان زبان را مشتری چون گوش نیست همونطور که زبان ما یک اوز با او سنخیت و مجانست داره حرفشو میفهمه همونطور محرم این هوش هم جز این بیهوش ها نیستن کسایی که چی؟ از قفلت های دنیا از منیت ها از خودخواهی ها از تکبرها و از این چست و چالاکی های دنیاوی که اونها را از خدا محروم بکنه از اینا دست شدن از اینا دست کشی یلاو بودن که روش گردن حضرت عمر میگه ما 90 درصد معاملات ببینید اقتصاد اسلامی رو خوب گوش کنید یکی هست اقتصادی که بر مبنای امپریالیسم غربه نگاه امپریالیسمی به جامعه مثل نگاه گرج زوزه کشنده ببخشید دور از جمع ما به یک گله گوسفنده نگاه گرج زوزه کشنده به یک گله گوسفند چیه چند تاشو بدرم چند تا رو پاره پاره کنم تا شکممو این نگاه امپریالیزمه فقط شکم تو سیر بشه ولو به قیمت سیستم ربویی که چی دیگران به خاک ذلت بشینن که قرار تو پولدار بشی قرار از ضعف‌های اقتصادی یک ادجامعه تو سو استفاده کنی تا تو میخوای برای خودت برج بزنی تو میخوای شکم سیر بخوری قیمت شکم سیر تو گرسنگی سطحا نفر باشه این نگاه امپریالیزمه اما نگاهی که اسلام داره معرفی میکنه این نگاه نیست حضرت عثمان رضی اللہ تران در زمان اونا قدسالی آمد در زمان خلافت حضرت عمر حضرت عمر رضی الله تلان با این قدسالی به مردم گفت متوجه خدا بشید نماز بخونید چهاره دیگه نبود رومنبر رفت و اینها رو متوجه اعمال متوجه عبادت کرد یک کاروان تجاری مال حضرت عثمان که خیلی کاروان بزرگی هم بود با یک سرمایه بسیار هنگ گفت ما باشیم میگی موقعیت خوبی برای چی احتکار. موقعیت خوبیه برای چی، قیمت شکستن، موقعیت خوبیه برای چی، پله اقتصادی درست کردن از ضعف اینا این نگاه ماست نیست؟ اما حضرت عثمان رضی الله تعالی چیکار کرد؟ تا مال او متجره دیگه آمدن پیش حضرت عثمان گفتند تمام کاروان تو دو برابر نفعی که تو خریدی ازت میخریم پیش‌نادت بد میدیم. همین الان پیش به قول رو پیش فروش کنین. حضرت عثمان گفت فروختم. به قیمت بالاتر. یکی دیگه آمد گفت سه برابر حضرت عثمان گفت فروختم به قیمت بالاتر. یکی دیگه آمد گفت چهار برابر حضرت عثمان گفت فروختم به قیمت بالاتر یکی گفت این چه تاجری از کجاست گفت کاری به کار کارا ندار فروختم مطمئنی چهار برابر گفت بله میدونم فروختم به قیمت بالاتر یکی دیگه آمد گفت پنج برابر حضرت عثمان گفت فروختم به قیمت بالاتر گفت به کی فروختی گفت بذات الله من جاء بالحسنته فلهو عشر ان کاروان که آمد کل این کاروان را گرفت برای مسلمان ها وقت کرد بگید برای عثمان چی به درد خورد موقعی رفتنش از دنیا اونایی که گذاشت برای میراث برای یا اونایی که خودش داد با دست خودش با این حالت ما گای وقتا میدیم اما تا روپ پیشانی حق، طرف حقاکی نکنیم و این رو مبدع تاریخ نکنیم چی؟ نمیدیم آقا مرغی به یکی داد بعد میگه تو هر مجلس رو محفل میگو از روزی که به همین آقا من مرغی دادم سه روز بعد فلانی مرد از روزی که به این آقا من مرغی دادم دقیقا چهار روز قبلش طلا این قیمت بود الان اینقدر آقا آخر آقا آمد گفت جناب آرووی منو نری دو تا مرغبت میدم دست از سر من ورده. امروز اگر میدیم هم اینطور میدیم. اول باید رو پیشنی طرف حککی کنیم که ما دادیم فرام نکنیم لت رو از خدا میخوام از این ها تو سمعه و ریا یکم توش قاطی نشه که اصلا نمیشه بعدی کارایی بکنیم دیگه بعد میگیم دادیم خدا فراموش نشه تو به خدا ندادی به کی دادی؟ به خودت برای خودت خرش کردی از خدا طلبگاری؟ داده نمامینه البته نمیگیم مخلصی نیستند حضرت مرحوم رجبلیزاده حاجی رجبلیزاده میگه زمانی که مدرسه رو بنا کردن تو اوذای خواهران یکی از اساتید علما صبت میکنه خب خیری که این مدرسه رو با پولش راه اندازی کرده خودش چقدر زحش کشیده برای احداثش راه اندازیش خدای یک بینش بهش داده فهمی بهش داده میگه یک یکی آمد بنده خدای دختری رو سبتنام بکنه گفتیم جا نداریم دیر اومدید شما او گفت که خواهش میکنم سبتان گفتن خواهش نمیخواد ما از شما خواهش میکنیم که شما فرزندانتون بیاری ثبت نام ما شرمنده شما هستیم اما جا نداریم حوزه خواهران یک سری محدودیت ها داره مثل حوزه پسران نیست دولار بتونیم تو مسجد هم بخوابونید یک سری محدودیت ها داره ما هم از این بیشتر گنجایش نیست نمیتونیم ثبت نام ببخشید سال آینده تشریف یاری. گفت من از اقوام حاج آقای زاده هستم گفتم باش اقوام ایشون لازم نیست شما باشی همین که شما مسلمانی کافیه اما جا نداریم که من میرم الان نامه ازش میارم ببینم چطور سبتنام نمی کنی بلند شده رفت میگه خب خودش یک متنی رو غالبا نوشته بود و مرموم آجی, آجی رشبلی زاده یک امضای زیرش کرده بود یک خطی کشیده بود آورد پیش منو بعد داد دستان که حالا جرعت داری سبتنام نکن این رو گذاشت میگه منم از بس ناراحت شدم از این کار غیر اخلاقی این فوری پارپارش کردم ریز ریزش گفتم برو به آقای رجبلی زاده بگو تو خانه خودش دختر شما رو ثبت نام کنه جان نداری بعد اینو جام کرد و بود پیش حاجی رجبلی زاده مرحوم میگه اون دور ایستاده بود من میدیدم از تو اتاق اون بیرون ایستاده بود خود این عالم تعریف می‌کرد اینا رو میگه تا اینا رو دید یه قه قه خنده ای گفت دیدی منم سنگ رو یخ کردی خیلی اینا مولوین اینا از دنیا دین خودشون بهتر خبردارن از من از به بپرس از من از زمین ها بپرس از من از این مسائل دیگه بپرس من منو چی بی کارا دیدی منم بیشاره کردی خواهد تمال بردی بعد که بعد از نماز رفتم پیش مروم رجبالیزاده گفتم که بالاخره ببخشید من واقعا قصد جسارت به شما نداشتم اما اینش گفت نه نه نه اتفاقا خیلی کار به جای کردی که از آینده کسی این توقر و اطمینام وجد با همه شد خیلی کار خوبه نگران نباش کار خودتو بکن الحمدلله حالا اون من خبر دارم هستن خیرینی هستن بلاخره افرادی که چی بلاخره بذل جان و مال میکنن با گمنامی ها بدون هیچ ترق حتی تشکر اینو ما این کار نمیکنیم اما عموم حالات رو داریم میگیم که جامعه ایمانی طور شده محرم این هوش جز بی هوش نیست مرزبان را مشتری چون گوش نیست گر نبودی ناله نیرا ثمر این بیت در عقیقت فوائد ناله دوستان خدا رو داره بیان میکنه یک منکرن منکرم ناله دوستان خدا یعنی چی؟ کتاب هست خودمون میخونیم حکایات هست خودمون بلدیم دیگه این که ناله دوستان خدا دیگه چیت منکرن به نوعی با چشم حقارت به این ناله های دوستان خدا نگاه میکنن نمیفهمن حقیقت این رو مولانا میخواد میخواد بگه که اون علوم معارفی که از زبان دوست خدا خارج میشه عموما در انسان طلب پیدا میکنه و به وسیله طلب بنابرای قاعده جوینده یابنده هست این, طلب این شخص با این طلبش بالاخره یابنده ی حقیقت میشه همین ناله های مولنا خلیل احمد سهاران پوری بود که محمد الیاس درست کرد همین ناله های حکیم المه مولنا شفری طهانوی بود که مفتی شفی درست کرد همین ناله های شمس تبریزی بود که مولنا روم درست کرد همین ناله های دوستان خدا هست که شاگردانی درست میکنه که دنیایی رو متحول میکنه. کسی نمیتونه اینا را انکار بکنه این ناله هایی که از سینه دوستان خدا درمیاد دنیای رو متحول کرده نمیبینی این تخصیل اما اونت دارن کمالات گر نبودی ناله نی را سمر نی جهان را پر نکردی از شکر شکر معرفت خدا که امروز میبینی از منابر، محافل، مجالس، تحریف ها، تصنیف ها این شکر داره پخش میشه این حتما کجا؟ یک سرمنشأی داشته از یک جای بوده ببینید اکثر بزرگان دیوان شمس رو شما شاید شنیده باشید دیوان شمس رو شاید بعضی‌ها فکر کنم بنا به اسمش مال شمس تبریزیه ولی مال شمس تبریزی نیست مال کیه مولانا مولانا چون فهمید ناله شیخم بوده که این شکر رو به وجود آورده اسمش رو گذاشت چی از من نیست از شمسه تفسیر مظهری رو شاید علما دیده باشن به زبان عربی از قاضی سناؤ الله این رو اسمش رو تفسیر مظهری به نام شیخش میرزا مظهر جان جانان از فرط محبث مولانا اسم شیخ که میاد اسم مرشد که میاد میگه زین سپس من نجویم راه اسیر پیر جویم پیر جویم پیر پیر اسم مرشد میاد مصلح میاد به وجل میاد اسم مولانا تکرار میکنه مسلسلوار هرچی من دارم از اون ناله های نیدارم تکرار میکنه. آکی ولما تانوی رحمت الله تعالی گویا قدر منبر خودشون هی دیدم مزامین میاد علوم میباره واردات غیبی داره میاد هی اینا رو بیان می‌کردن هی میاد هی بیان هی میاد یک بند خدایی میگه مثل من اهل منبر متن رو آماده کرده بود جلوتر چند تا کتاب خونده بود خلاصه چندتا چند تا مقاله های مختلف رو سایت های مختلف رو بالاخره یک متن سخنرانی قشنگی بر خودش آماده کرده بود این حقیقتیه رومنبر بعد گفت خطبه رو خوند و بعد دید هیچ چی نمیاد اینایی که خونده بوده کاغذم جلوشه دست پاچه حالا حیران چی بگه بعد میگه بعد گفت به خدا پوره در نمیاد <تصفح> چطور به ما بفهمونم این سینه پوره من کلی مطالعه کردم کلی تحقیق کردم کلی غیلغال از کتاب یاد گرفتم اینا همه هست یک واقعی دیگه بگم مفتي قاسم حافظ الله بیان می‌کردی دفعی میگفت که بند خدایی مولانا چاباری مولانا عبدالرحمن چاباری تشریف نداشتن جایی می‌خواستن برای یک مولای تو روستا گفتن مفت قاسم صاحب یک شیرینی اینو تعریف می‌کنه من دوست دارم که همون طور به همون طریق بگم حالا میگفت که به این گفت که بند خدا شما به جای من صحبت کن. این هم میگه خوب چه مجال خوبی منبری شهری جایی خوبه دیگه بعد میگه تو روستا بود مولانا باشه همه کرده بود این که متنی آماده کرد و صحبتی در خور این جمع و این گذاشت تا کرد تو جیبش مطور ایجیم داشت و هندلو و خداحافظ بریم حالا آماده که بره رو من بر از قضای روزگار تو راه این علم رو بات برده آقا خبر نداره بعد میگه رفت اون بالا و بلاخر خطبه مسنونه رو خوند و در حین خطبه مسنونه رفت تو جیب و یا الله این. بعد میگه این بیچاره من چی بگه این برا رو زد اون برا زد این ور نمیشه دیگه آمد پایین و یکی دیگه با رفت اون بیان رو تکمیل کرد حالا بیر این یک طرف قضیه یک طرف دیگه حکی علومه مند اشرا موقعی که رو منبر میرفت مزامین میامد علوم میامد واردات قیبی میامد طوری که خود حکی علومه تانوی به وشد میامد گاه میکشید اوق ای های حاجی های حاجی اسم شیخ و شمیگفت حاجم دادالله الله مهاجر مکی رو با این سینه چه کار کردی؟ چطور اینو صاف کردی که تا رو میادم اینطور؟ میاد من حیرانم کدوم بگم؟ از کجا بگم؟ همه تازه همه نو همه بکر من حیرانم کدوم یکی رو بیان کنم؟ های حاجی این اثر چیه؟ ناله نیه که این سینه رو پر از شکر کرده و چی؟ هر خودش به وجد آمده دیگران رو به وجد آورده الله زبانه و تاله این واردات رو میده به کی به؟ اون کسایی که ناله نی رو تجربه کردن برای این نمیشه ناله نی رو کرد؟ بگی؟ انکار کرد گر نبودی ناله نی را ثمر نی جهان را پر نکردی از شکر شکری که امروز تو دنیا باقی مونده و شیرینی که از کلام دوستان خدا تو دنیا باقی مونده اثر ناله های نیه هر کسی میبینی صحبتش یک تأثیر داره چند قدم برو عقبتر نگاه کن یک استاد داشته یک صاحب درد داشته که چی؟ حالا امروز صحبت داره هر جدیدی تعلیف و تصنیفی خوندی تو رو تکون داده جذبه عمل تو تو ایجاد کرد برو عقب نگاه کن این استاد داشته، ای منبع نور داشته که چی؟ حالا امروز قلمش داره نور پخش میکاره تو جامعه یکی آمد پیشه استاد ما گفت که همین کتاب رو بی اعلان کنید بالاخره این کتاب من توضیح بشه تشریح بشه شما از زبان مولانا محمد و مر سربازی گفته بشه خب خیلی خوبه این پخش بشه مولانا فرمود ببین اگر این کتاب نوری داشته باشه، و برکتی داشته باشه، خود الله چکار میکنه؟ پخشش میکنه اگر نوری هم نداشته باشه از زبان من که نه زبان صد نفر دیگم بگه این پخش نمیشه مقبولیت رو خدا میده نوری اگر توش هست خود خدا پخشش میکنه این کلام مولانا رو از رسانه ها گفتن از سایت ها گفتن از کجا گفتن که بعد از چند قرن هنوز چیه حرارت توش هست و هنوز مقبولیت عامه ما بین همه افراد به نوعی ما بین اکشار مختلف داره. حتی غیر مسلمان ها. این نور رو و این اثر رو و این شکر رو الله سبحانه تعالی از کجا گذاشته از همون ناله های نی این اثر رو توش گذاشته در قمه ما روزها بیگاه شد بحث شکر که آمد حالا مولانا یادش از عشق آمد رفتو مباحث عشق گفت در قمه ما روزها بیگاه شد خدایا چیکار کنم هر روزم با یه قمی داره شب میشه هر روزم با یک قمی داره شب میشه روزها با سوزها همراه شد تمام روز من با سوزه تمام روز من با درده تو این جامع هر که سوزی داره هر دردی داره نه یکی دردش پوله یکی دردش خانه یکی هر کی روزش و شب میکنه با یک سوزی با یک دردی با یک فکری مولانا داره سوز و درد خودش رو میگه در حین وسال داره از این درد شکوه میکنه حالا یقین بعضی شارعين گفتن مولانا اینو به خاطر تعریض گفته و ما الیلا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون حبیبنا جورگو منو چی شده در حینی که خودش هدایت شده اما همه رو به طرف خودش نسبت میده تا برای مخاطبش چی نباشه سنگین نباشه اگر به اونا میگفت شما رو چی شده چیکارین که ایمان نمیارید شما چه شده شما رو که جلو نمیرید و فلان نمیکنید اونا فراری میشدن برای همین تعریض کرد با وجود این که خودش هدایت شده بود گفت چی و ما الیلا اعبد و الیه ترجعون منو چی شده چرا این کارو نکنم تا مخاطب خودش رو آماده کنه لقمه‌ای و بذاره به دهنش شیرین باشه و بخوره قبول بکنه و بیاد به سمتش بعض جا میگن این تعریضیه که مولانا کرده تواضعا مولانا فرموده روزهای من با سوز همراه شد تا مخاطبش بفهمه روزت باید با سوز باشه با درد باشه روزی که بدون این درد بود اون روز نیست اون روز مردگیه اون خودکشی تدریجیه به خدا روزی که بدون سوز باشه و بدون اشک باشه و بدون رسیدن به کمال آرزوی رسیدن به کمال باشه این روز یک انسان نیست روزی که فقط با شکم شب بشه روزی که فقط توش معکولات و مشروبات و ملبوسات باشه فکر همینا باشه این زندگی یک انسان نیست از یک بند خدا میگه سوال کردن اصول دین چند است؟ گو خوراک پوشاک مسکن اصول دین شده این حالا از چیزهای دیگه ما نمی طرف اگه بش بگی آقا اصول دین توحید نبابد ماده ما از توحید یکم برم بگو چیز برای گفتن نداره ممکنه خیلی راحت یکی بتونه با شعور دینش بازی کنه او رو به هر فرقی و هر گروهی و هر جایی بکشونه ببره تو بحث توحیدی چی نداره تو بحث نبابد اگه ازش بپرسی آقا سیرت رسول الله را یک مرتبه از اول تا آخر توی مسلمان توی امت رسول پاکی صلی الله و سلام توی که بعد رسول پاکی صلی الله و سلام رو از پدر مادر از نفس خودت بیشتر دوست داشته باشی یک مرتبه تا به سیرت رسول الله از اول تا آخر خوندی به نظر شما اگه من سوال کنم این سال رو از تو این جمع چند تا دست بلند میشه اینقدر از نبیش بیگانه از اصول دینش بیگانه اما همین آقا رو سوال تا حال چند مرتبه چند سریال رو از اول تا آخر دیدی؟ اگه شب ترک شد فردا غذایی به جا بردی؟ پخشمال دیدی؟ چند تا دست بلند میشه؟ چند تا سریال میگیم؟ هیچی پوچی تو زندگیمون خیلی جا داره سریال هایی که هیچ سر و بنیادی نداره میگن افسانه میگن فیلم همینا تو زندگیمون جا داره سیرت رسول تو زندگیمون جا نداره معاد از معاد چی میدونی زندگی بعد از موت از اون زندگی که ابراهیم میگرف بلا تخزنی یوم یبعثون حول حراس اون روز باعث شده که ابراهیم میگه خدا اون روز منو رسوا نکن حول حراسی در اون روز افتاده که ابوبک میگه کاش مثل این پرنده میبودم اون روز استادن اون روزی که الله مثل اون روز هیچ, هیچ وقت الله اون طور قحاریت و اون طور خشم نداشته طلا در حضور خدا بیستی و جواب بدی ابوبکر با وجود اینکه بشارت جنت رو شنیده سانیوسنین در بدر و قبر و در خلافت و در امامت و در همه چیز نیم. با همین وجود از اون روز میترسه از معادش انقدر آگاهه ما از معادمون چی میدونی این خمو داریم این سوز ابوبکر رو داریم امروز ما سوزی که ابوبکر نسبت به توحید داشت سوزی که ابوبکر نسبت به نبوت داشت سوزی که ابوبکر نسبت به چی داشت معاد داشت هست ما پس ما هم به زبان حال داریم میگیم چی؟ به زبان حال داریم میگیم زبانمون نمیگه به زبان حال عمل کردمون داریم میگه چی؟ اصول دین چند تاست؟ بگین خوراک، پوشاک از اینا تکمیل بشه دین ما تکمیل شده دیگه ما به همه مراد و مطلب ما رسیدیم همه آرزو و آمال ما در دنیا تکمیل شده الله رحم بکنه هم خب اینو میگن بعضیا میگن تعریزه اما نه حکیم الامت طهانووی رحمت الله تعالی میگه نه شرع این طور نیست حکیم الامت طهانووی میگه شرع اینه ببینید طالب صادق با وجود واصل بودن با وجود اینکه قرب خدا رو تجربه کرده اما هیچ وقت اون آتشش و اون اشتیاقش به پایان نمیرسه اگر طالب صادق باشیم معرفت از خدا کامل بشه میفهمیم که انه وراءل وراء ثم وراءل وراء ثم وراءل وراء خدا از اون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی بلندتره و هرگز هرگز ما نمیتونیم به انتهای محبت الهی برسیم کسی که نماز میخونه نبی هست نماز میخونه بر نماز خودش استغفار میکنه واصل اما در حین وصل داره استغفار میکنه ابراهیم خانه کعبه بنا کرده اما با یک سوز بعد از بنای خانه کعبه بعد از بنای خانه کعبه منی باز آها شروع شد فخر میکنه، آه میکشه سوزه بعد از بنای خانه کعبه ربنا تقبل من تقبل از باب تفعول هست خدای شایستگی قبولیت نداره اما قبول کن قبول خور خدا این جذبه ابراهیمه در حین وصل دعای قبولیت میکنه در حین وصل استغفار میکنه در حین وصل عشق داره و آه داره اما یکا ده که ظرفیتشون کمه یک چیزایی که تو حالا م... بحثش میاد جلوتر مولانا اینو صحبت میکنه من نمیخوام اینجا بست بدم به یک چیزای کوچیک کوچیکی که تو این مسیر میرسم فکر میکنن به منزل رسیدن تازه چی هم شدن رادم شدن طلبگار هم از خدا هستن مسو ما باشید ما این ماینی ماینی ما ببخشید دور از جمع ما گاوخینا رو گفتن خوبه برای یک نشاطی از حکیم اولوات آنوی بزرگان ما ثابت گاوختا خوشطبیان تو صحبت‌ها میکرده. میگه میکرد دو تا معتاد بودن با همدیگر مواد مصرف میکردن این خورده که نشه شدن تو یک حالت وجدی آمدن این یکی به این یکی گفت اینا هم تریاک کشیدیم بیا یک هم بریم بریم ولش کن تا همه عفو بشه حج مبرور سزاش همین که الله همه رو... یعنی باعث میشه که همه گناهو عفو بشه بریم گه بریم حالا موتاد سرعت سیرش چقده دویدنش چطوره دیگه اینا رو شما میتوت تصور بکنید دویدن و دویدن تا یک مقداری فاصله راه به نظر خودشون برای خیلی موافق صد دارن نرکت میکنن رفتن و رفتن و رفتن تا نشه از سرشون پرید بعد حالا دیگه سخت شد قدمها حالا مشکل شده بعد یک مرتبه این رفیق به رفیق دیگه گفت خیلی راه آمدین تک نمی رد شدیم بعد گفت چرا اتمالا رد شدیم دو مرتبه برگشتن باز رسیدن به کجا ها؟ باز به همون منقل و بافور حالی اگه ده هستن همینطور کم ظرفیت تو میدان محبت خدا چند قدم که بر می فکر می‌کنن رسیدن و هنوز تازه چی هم شدن ردم شدن من یک چیزی بگم یک سالی ما جایی جلسات صهرانی بود ما را بردن و گفتن جز هیات داوران باشید و برال ما رفتیم یک تلاوی بود خیلی شیرین صحبت می کرد و ساده صحبت می کرد. بعد گفت که از این چیز که گایا خود ما فکر میکنیم رد شدیم. کرد صحبت کردن گفت که یک روزی من نماز می با یک حالتی با یک کیفیتی با یک رققط قلبی با یک حضوری با یک شهودی که اصلا گویا این نماز تمام وجودم و حلاوت کرده. لطف می بردم از این نماز تا نمازم تموم شد گفتم السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله الحمدلله یک رکت نماز یک دفعه نماز مثل ابو بک خونده. چه نمازی چه کیفی چه لطفی بعد گفتم این چطور شده این نمازم این طور شده کم فکر و فکر و فکر و فکر بعد دیدم وضو نداشتم حذ رحمانی نبوده این یک لطف نفسانی بوده جلوتر از این شاید یک چیزی دیده بوده یک چیزی شنیده بوده یک لطفی درونش بوده یک لطف نفسانی بوده این فکر میکرده چیه؟ بگید این حضر رحمانیه مثلا آقای صحبت میکرد میگرد رفتم خدمتشم هر صحبت یک جایی گفتن عجیب حالت ذکریه کیف گوری تو این جلسات حال میکنی اصلا من میدونم اکثرا هم نماز نمیخونن اکثرا هم متبع سنت نیستن و متقی هم نیستن اما برام فکر شد چند وقت پیشم چند روز پیش اتفاقا یک مهمانی داشتیم از چاوار اون صحبت میکرد از این منطقه نبود از چاوار بود صحبت میکرد گفت من میدونم اکثر متعلقین دوستانش تو تغییری هم توشون نیامده متقی نیستن متبع سنت نیستن. اما این همش میگه یک حالیه یک وجدیه فلانیه رفتم جلسه ذکر شد بله واقعا کیف میره اصلا دنیا برات یک جوری دیگه جلوه میکنه فلان آخر سر دیدم گفتن چطوره این من که میبینم این بنده خدا ببینید ما میخوایم متقی بشیم بعد بریم تقوا رو از متقی بگیریم من مو ندارم مثلا کچلم خب میخوام برم برای موام یک فکری بکنم تا این موام از ریزش مشکم بشه میرم پیش دکتر کچل ها کلاگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی من میخوام متقی بشم میرم پیش یک شیخی پیش یک مرشدی که خودش هنوز ضعف داره در فرایض خودش ضعف داره هنوز در ارکان اسلام این واقعا نشانه چی رو میرسونه من میخوام متبع سنت بشم پیش کی کسی که خودش هنوز متبع سنت نیست میگه برام فکر شد این چطور میشه این جلساتش با این کیف و وجد و این حالت جلسش با این نتیجه ها نمیخونه تجسس رو این طرف این طرف بگر تو اون مرکزی که داشت جایی که داشت بعد یک مرتبه دیدم موقع تو آشپزخونه یکم بنگ رو میگیرن با قضاها قاطی میکنن بعد اینا رو به خورد این بیچاره ها میدن اونایی که اون نشر اونجا تجربه میکنن نشه قرب خدا نیست نشه چیه بنگ همون حکایت خر برفتو خر برفتو برفت, برفت این حالت ما همینه روز متاسفانه ما نمیفهمیم حضای نفسانی رو و حضای رحمانی رو گایی تو حضای نفسانی گیر کردیم و بعد میگیم واه واه خدای چه بنده گلی داری تو یک وازیدی تو دنیا هست که منم خدای این یزیدی های عصر رو هم مثل کی کن من کن اما نمیفهمیم چه اما دوست خدا در حین وصل در حین وصل اینو میخوام بگم در حین وصل به خودش مشکوکه به مولانا یوسف رحمت الله تعالی شخصیت دوم در دعوت گفتن چه کار کنیم به دیگران اپجویی نکنیم چه کار کنیم دنبال گناه های مردم انقدر نریم و تجسس تو حوزه فردی دیگران نکنیم چه کار کنیم غیبت نکنیم مولانا طارق جبیل میگه ما اردن تشکیل بودیم یک زمان گفتیم که دیدیم غیبت میشه طول روز گفتیم بی یک کاری بکنیم عهد کنیم نکنیم همین با خودم نشستم عهد کنیم غیبت نکنیم گفتم خوبه بعد بعد از زور شد یکی از این رفیقا گفت به خدا اگه قیبت نکنی خب چی بگیم؟ <تصفيق> بعد اگه حرف نیست از محبت خدا از معرفت خدا از دوستی خدا از دعوت از خدمت چیز دیگه نیست که آقا میگه چی؟ اگه قیبت نکنیم چی بگیم؟ یکی از اینا میگه به ما گفت برحال کار نداریم شخصیت دوم در دعوت بود گفتن آقا چیکار کنیم غیبت نکنیم چیکار کنیم طعنه به دیگران نزنیم چیکار کنیم دیگران رو به چشم حقارت نگاه نکنیم چیکار کنیم تا بالاخره دنبال ابجوی مردم نباشیم اینو خیلی خطرناکه چیکار کنیم انا انا نگیم مولانا یوسف فرمودن چرف حکیمانه فرمودن بر اعمال خودتون و بر خدمت‌های دینی خودتون مثل گناههای خودتون گریه کنید فهمیدید گشت کردی بعد از گشت بشین گریه کن الله گشت من کجا گشت ابوبک کجا کون اخلاص کون توکل کون للهیت با گشت ابوبک هدایت پخش میشد با گشت من ظلمت پخش میشه ابوبک دعوت دادی توفیق دعوت نصیب شد بشین گریه کن استغفار کن مولنا الیاس همین تعلیم داد بعد از گشت تمام شد استغفار کن یالله بزرگان اسلاف ما دعوت میدادن هدایت پخش میشد من دعوت میدن دیگران از دین فراری میشن الا استغفار توبه نه این که ما امروز گشت کردیم متاسفانه فلانی فلانی فلانی گمراه شدن نمیان با ما همکاری نمیکنن خوب بودن الان دیگه گرفتار دنیا شدن یکی گرفتار سیدی شد از این کارکونا شروع میکنه غیبت جناب یک گشتی تو کردی حالا خدا قبول کرده یا نکرده دلیلی شد که تو همه رو بزنی و ما رو زخم زبان بزنی غیبت کنی مولانا یوسف چه حرف حکیمانه یاد دادن چی شد؟ اگر میخوای بر خرابی دیگران نگاه نکنی بر اعمال خودت و بر طاعت خودت و بر های دینی خودت انقدر گریه بکن تا مجالی به شیطان نرسه که بهت بگه چی؟ اویوب دیگران رو هم چیکار کن؟ نگاه کن ما یک کار میکنیم؟ حالا مولانا در حین وصله اما در حین وصل میبینه از اون ببینید انبیا گاهی وقت‌ها استغفار میکردن استغفار انبیا برای چیه؟ واصل نبودن، انا یَزُبِ الله. گاهی وقت انبیا توبه میکردن توبه انبیا برای چی بود؟ توبه انبیا برای این بود که وقتی یک درجه قرب جدیدی برشون میرسید احساس گناه میکردن به درجه چی؟ قبلیشون. به این درجه قبلیشون احساس گناه میکردن و شرمندگی میکردن استغفار میکرد این درجه قبلی ما گناه بود. حسنات العبرار سیعات المقربین نمازی که من میخونم با همه خشوع و خضوع اگر این نماز رو ابوبک بخونه چیه؟ برای او جرمه حکیم علامه تعانوی رحمت الله یک شخصی آمد پیشش مریضی داشت که نمیتونست بالاخره نجاستار از خودش دور بکنه مریض بود تخصیل شما هست یا تخصیل ما هست نمیدونیم ساعت 8 شده از یک طرف شما خوب گوش میکنید و ماشالله انقدر تر و تازهید که من فکر میکنم یک رو بیست دقیقه اوله حالا ساعت رو نگاه میکنم بیان ساعت چند شده هشت شده انشالله که خسته نیزید ایک دو رو دو ما محک بزنیم آفرین بر شما مردم خوف ماشالله اما خوب ما هم سعی میکنیم انشالله کمتر بشه ولی خوب این همه که ما پای سریال ها و فیلم‌ها نشستیم و اینقدر که ما بالاخره به امور مختلف مشغول بودیم یک بند خدایی رو میگه گفتن آقا یک زمان یک تحصیل کردیم پیش من گفتن آقای جلسات خیلی طولانیه یکم کمتر کنید به درس ما لطمه میخوره ماشاءالله یعنی الان که تو بری خانه مستقیم درس میخونی بله ولی بلای من میخوانم تا یعنی تو فیلم نگاه نمی کنی یعنی تو سریال نگاه نمی کنی یعنی دنبال فوتبال تو نیستی یعنی سر کوچاها الکی وای نمیستی یعنی رفیق بازی و اینا که هست جناب مری بیگنده خدای گفتن گفتن من 25 ساعت درس میخونم گفتن جناب زیاد شد شبانه روز 24 ساعته گفت فکر اونم کردم یک ساعت صبح زودتر بیدار میشم <تصفيق> حالا قدمتشه مرشد ما ما کار میکنید گاهی وقتا میخوایم از دین کم کنیم جلسای فلانی طولانیه چقدر؟ بگیم یک ساعت یک ونیم ساعت همین آقا همون روز پای تلویزیون سا ساعت چار ساعت نشسته اون زیاد نبوده چی زیاده؟ این زیاده اله هم شما با سلبات نشون دادی که چی؟ پس تا صبح نشسته انشالله نه؟ در غم ما روزها بیگاه شد ببینید بعضی هستن در عین وصلن چی میخواستم کیات انشاءالله قد خب در جان ببینید عرفا و مشایخ ها می میگفتیم انبیا در حین وصل درجه جدیدی که بهشون میرسید در درجه قبلیشون احساس گناه میکردند در حین وصل چون این درگاه بی‌نهایت درگاهی هست احساس گناه حالا مولانا همین رو میگه در قمی ما روزها بیگاه شد روزها باسوزها همراه شد هر روز قرب جدیدی که میاد مولانا میگفت دیروزی پس چی؟ او گناه بود که؟ اونم گناه نبود اونم قرب بود چون این قرب جدید لذیستر و حلاوتش بیشتره نسبت به اون احساس گناه میکرد در قم در ما روزها بیگاه شد روزها باسوزها همراه شد تو این بیت مولانا علاج چی رو داره میکنه؟ عوج هر که هستی باید با سوز باشی چون انبیا با تا آخرین لحظه زندگیشون با سوز زندگی کردن عمر آخرین روز زندگیش با یک سوز گذاشت میدونی چطور موقع وفاتش سرش روی پای پسرش عبدالله گذاشته شده بود عمر میخواد از دنیا بره امیر المومنین کسی که همه زندگیش برای مسلمان ها عزت بوده اسلام آوردنش باعث علنی شدن اسلام شد هجرتش باعث اش عزت شد خلافتش هر روز یک برگ جدید عزت برای مسلمان ها رقم میخورد حالا این عبرمرد این دوست خدا این کسی که شب با خدا داشته و روز با خدا میخواد از دنیا بره سر عمر روی پاهی عبدالله گذاشته شد گفت بابا سر من روی این خاک بگذار من می‌خوام از دنیا برم بگذار الله بر این سر خاکالود عمر رحم بکنه این سوز در حین وصل با این سوز داره دنیا میره. بن عباس حبر الامه اونجا نشسته بود امیر بو امیرالمومنین عمر تو تو این سوز تو این درد تو که همه زندگیت برای ما مسلمان‌ها عزت بود یک دفعه عمر گفت این شهادتی که امروز برای عمر میدی فردا در میدان محشر جلوی امام الانبیا هم میدی قبل ما این شهادت اونجا هم میدی بعد حضرت عمر به عبدالله بن عمر گفت ببین من از ام المؤمنین سیدتنا آیشه صدیقه درخواست کردم چون خانه آیشه محل وحیه، خانه آیشه محل وفات مصطفى، خانه آیشه محل دفن مصطفى و خانه آیشه جایی که روزتون من ریاض الجنه برای مصطفى است این خانه متبرکی که این خانه رو دوست نداره من از ام المؤمنین جلوترم کس به اجازه کردم که اگر اجازه بده قبر اول قبر مصطفی قبر دوم سانیس نینش قبر سوم قبر من باشه جلوتر ام المؤمنین به من اجازه داد اما زمان خلافتم بود زمانی بود که من لقبم امیر المومنین بود شاید اینا رو رو, رو در بایستی گفته موقعی که من وفات کردم مطابق سنت منو تجهیز کنید و من رو کفن بکنید و بعد پابوت منو از کنار خانه ام المؤمنین ببرید دو مرتبه برو از ام المؤمنین کسب اجازه کن بگو حالا عمر وفات کرده و حالا دیگه جای رو در باستی نیست اجازه میدی پدرم اینجا دفن کنم اگر اجازه داد منو دفن کن من دوست دارم کنار مصطفی باشم اگر اجازه نداد تو قبرستان عامه مسلمان ها منو دفن کنید که بعد غصه مفصله به عمر اجازه داد این آخرین روز عمره با این س بید این این این علاج عجب مولانا به من تو داره میگه صاحب تعلیفی صاحب تصنیفی صاحب تبلیغی صاحب خدمت دینی صاحب عباداتی باید این سوز رو داشته باشی موضوع باش تو عجب نیاد این بیت علاج عجب بیت بعدی روزها رفت باز مولانا خودش خودش رو تسلام میده با یک حسرتی روزها رفت گور و باک نیست اگه این روزا داره میره بزا برش گل نداره تو به من ای آن که جستو پاک نیست، ای عشق زری است تو هم قنیمت، یک زری است تو هم وسیله نجات، یک زری است تو هم وسیله نجاته تو به من ای عشق تو به من که جستو پاک نیست، مثل تو چیزی پاک نیست. همین که من تو جمع عشاق هستم همین نعمته همین که من به جمع آشکار وصلم، همین, همین بس، همین که حد الصالحین نه ولست منهم. اگر صالح نیستم محبت صالحین دارم همین زرشم بسه همین که در جمع صالحینم هم، همینم هم نعمت نشکری نکن بیت دوم بیت اول علاج اوج بود بیت دوم علاج چیه؟ علاج ناسپاسیه ناشکریه خب ببینید برای همین میگن عرفا جامعه از دادن از یک طرف عطایی که خدا بهشون داده توفیقی که خدا بهشون داده اینو بزرگ میفهمن از طرف خودشونو چی میفهمن؟ این جامعه ازداد شد چطور شد عمل بزرگ خودم کوچک میشه مگه بله این اجتماع زدین برای فلاصفه محاله برای مولانا محال نیست برای عشاق و رفا محال نیست در سواد چشم چندین روشنیست نور رو با چی میبینی؟ با تاریکی مردمک چشم سفیدی رو با چی میبینی؟ با همین سیاهی چشم اجتماع زدین شد یا نه؟ بگی برای خدا اجتماع زدین آسونه حالا از یک طرف عملی که خدا توفیقی که خدا به تو نصیب کرده از این حیث که الله داده این عشق من این آه من این خدمت دینی من این بزرگه توازه این نیست میگه یک نفر منبری بود رفت رو منبر گفت که من لیاقت این منبر و این میکروفون رو نداشتم جایگاه من اینجا نبود اما من با زبان علکنم چند تو کلمات گفت نفر بعد اون سخنران آمد گفت من حقیر آجز من بالاخره نه علمیتی نه فقاهتی نه چیزی اینم با چند تا کلمات تنوعی تکلفی چیزایی گفت نشست بعدی آمد و بیچاره اداهات بود حیران شد چی بگه حکیم العلماء طاهانی اینا رو میگه این گفت که من ناپاک پلیت و نجس یکی گفت بیا پایین بیا پایین حالا بار با هم زد تواضع یعنی این فنایت یعنی این که دو با 4 تا کلمه خودتو رو کردی تواضع ملکی درونیته تو اعماق قلبت باید فیصله کنی ببینی من وقتی میگم من عاجزم من خاک پای شما طرف مقاله که بله واقعا خاک پای منی چیکار میشیم <تصفح> تا براگوش اون سرخ میشه یا نه؟ این نشانه اینه که چی این تصنع این ادای متوازا است این تواضع نیست تواضع اینه که همون که داری میگی در اعماق قلبت همونی واقعا تو این تقایوری نیست فکر نکنیم گاهی وقتا ادای متوازا رو در میارون متوازی این تمام یک روزی که از دوستا گفت که تمام خرابی های امت از منه گفتم راست میگی یک مرتبه نگاه کرد تو خب چرا اینطوری نگاه میکنی آخر؟ تو نمیگی اینطوری منو گفتم راست میگی فقط میخواستم بهت بفهمانم خوبه کلماتت قشنگه اینا رو باید تکرار کنی تا ملکی درونت بشه اما هنوز نشده فکر نکن متوازی دو کلمه گفتی محمد علی یاسی دو کلمه گفتیم مولا محمد یوسفی تمام شد به اوج تواضع رسیدی اوج للالهی ادرسید قابل قابلما رو تمیز میکنی فکر نکن تمام شد دیگه به للالهی بله این کارو بکن همین ادای متواضا رو در آوردن به مرور زمان تو رو به تواضع میرسونه ملکه میشه برات اما هنوز نشده بر حال روزها گرف بورو نا نباشیم همین چیزی که الله سبحان و تعالی به ما انایت کرده قدردان همین باشیم شکر همین رو به جا بیاریم از یک طرف از یک طرف دیگه چی وجب درمان نیاد و خودمونو بزرگ نفهمیم. پادشاه وقتی که تاج خودش رو به یک غلام در خودش میده، به تاج اهانت نمیکنه، نمیگه این تاج به درد نمیخوره، این تاج خرابه. از یک طرف تاج رو بزرگ میفهمه، از یک طرف بگید خودش کوچک میفهمه. همین حیثیت ما خدا اشکی داد و آهی داد و فقانی داد و خدمت دینی داد قدردان خدا باش شاکر خدا باش خدایا تو این لیاقت و نصیب کردی و خوف زوال اینو داشته باشیم نکنه خدا این از ما بگیره الله توفیق عمل بده جزاکم الله بقیه باشه برای بعد ان